الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يضل فلا هدي له اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كتابك خرار هذا أسباب مذاكره بها من أجل كتابك هش في یکی از کتاب های مهم در باب اعتقاد درباب ایمان در باب توحید کتاب کشف شبهات هست یکی از مهمترین کتاب ها کتاب مهمی است از یک جهت چون خلاصه است از یک جهت چون برای طالب علم اصول کلی كلي، کلید کلی كلي، آیات محکمات اعتقاد محکم را میده کشف شبه هست کشف ازاله هست برطرف کردن حل اشکال جواب پاسخ پاسخ چی شبه مشتبه امریک مشتبه امریک درش تشابه پیش میاد امریک درش اشتباه پیش میاد کشف شبهات ها پاسخ به شبه پاسخ به امور مشتبه چون امور مشتبه زیادن امور مشتبه زیادن امور مشتبه شاید فعل آبا و اجداد باشه شاید تجربه باشه شاید قیل و قال باشه شاید دینی از ادیان گذشته باشه شبه یک نیمونه نیست یک سنف نیست شبهات مختلفه شبهات متعدده اصل بر اینه که ما دنبال شبهات نریم اصل بر اینه که ما دنبال شبهات نریم اصبر اینه که مجالی برای شبهه برای قلب خودمون توی قلب خودمون نذاریم. چون شبهه وقتی که وارد قلب میشه باید بهش پاسخ داد، جواب داد. وقتی که شخص نتونه جواب بده، وقتی که حاجز از جواب بمونه، اونجا هست که در از درهای گمراهی به قلبش باز میشه. فکر نکنیم که مشرکی همینطوری گمراه شدن. به قصد یا به نیت گمراهی گمراه شدن اینطوری نبود مشرکین شبهاتی داشته وقتی که پیانبر پرستاده می شد مثلا قوم نوح الان میاد بحثمون تو بحث قوم نوح قوم نوح اموری براش شد مشتبه بود عمر مشتبه چی بود اینها آدمای های صالحی که پیش ما یهوث و فلانی و فلانی اینها آدمای های صالحی بودن ما هم وقتی که می رفتیم اونا را صدا می زنیم دو دوامون سجابت می شود سجابت می خب چرا خدا را صدا ندارید رفتید اونو مرده ها را صدا زنید حالا انشاءالله اینجا بحثش رو فصل خواهدی بود پس یک جایی شیطان اون شبه را مزین کرده بود و در قلبش رخنه کرده بود حال پیانبر خدا آمده عدله و براهین از وحی خدا به اشون میگه نوح علیه السلام ولی حاضر نیستن کردش چتی سلام شد تو دعوت نوح را نپذیرند دعوت ابراهیم را نپذیرند پس پدرش گرفته تا قومش میگه بحث نکرد دیگر مناظره نکرد اومد باشون با وحی گفت خدا به من میگه گفته نپذیرفتند اومد با عمل وارد شد اومد ابراهیم علیه السلام بتراش شکست ما انواع مجادله داریم انواع رد شبهه داریم رد شبهه چه میشه علمی نظری استدلالی جاهایی میشه حقلی ابراهیم علیه السلام حقلن وارد شد با قومش اومد بوتا رو خورد کرد بزرگ اون بتا اون تیشه رو دستش داد اون رو دستش داد اومدن گفتن کی بوتا رو خورد کرد نگفت که بل فعله و کبیر این بزرگه رو هم. این بزرگه انجام بزرگ داده اون بوت بزرگه گفت که ایب میدونی ابراهیم این بوت که حرکت نمی کنه نمی نمیزنه هفت نمی سبحان الله بوت نمیشنبه نمیبینه بعد میایی ازش کمک میخواهی این چه خداییه این چیه استدلال عقلی منطقی و عملی با عمل وارد شد با عمل وارد شد شبهه بود پیششون که این بوتها به آمون استجابت میکنه خب الان دعاتون استجابت میکنه بذار حرفتونم بشنبه پاسق شما بده کی بوتها را خورد کرده بذار جواب شما بده این که استجابت میکنه اگر به شما استجابت میکنه ب حرفش رو بذاره بس نباید دنبال شبهات بود و اینکه ما پاسخ به شبهات بدیم بخاطر همین علماء از قدیم مناظره به اهل برعت را من کرده. چون در مناظره که باز بشه خود به خود اون طرف دمراه شبهات را مطرح میکنه و شاید مال بتونیم جواب بدیم و ندیم و از کسانی که همیشنم شاید قانع بشن نشن خاطر همین 1200 ساله از امام محمد که فتنی خلق قرآن بود تا الان علماء مناظره با اهل بدعت من کردن مناظره و گفتگو و گفتمان بحث مجادله من کرده. چرا؟ چون ما اصول کلی داریم اصول کلی من چیه؟ خدابنده از ما خواسته که او را بپرستیم غیر خدا را نپرستیم این اصل کلی این که ما بریم پیش قرب پیش مرده یا ناگه انجام بدیم یا نمیدونم قسم به غیر خدا بخود اینها دیگه امور مشتبه هرچند که مشتبه برای همه نیست حالا میاد انشاءالله بحثش رایم که مشتبه برای کسی که عالم نیست اما اهل علم براش مشتبه نیست واضحه حدیث رسول الله واضح من نظر بغیر الله فقد اشرا واضح مشتبه نیست فصلی لربک وله مشتبه نیست ملک اون جاهل که نمیدونه براش مشتبه است پس این باید درش دقت بکنیم خصوصا اینکه ك... اهل بدعت در دعوتشون دعوته علمی نیست دعوته عاطفیه با عاطفه وارد میشن با عاطفه سریع و ممیرا عاطفی وارد میشن با احساسات بابا و اجدادتون تو میخوای دین پشت دین ابو اجداد ابو طالب عموی رسول الله صلی الله علیه و چی بود چرا نتونست دعوته رسول الله ربط بده 16 سال به پای رسول نشه نزدیک 13 تا 10 11 سال نشست پشت دیوان رسول الله صلی الله علیه و آله تا دعوتش بود التماسش کرد رسول الله صلی الله علیه و آله نشسته بود در آخرین لحظات مرگش ایامو بگو لا اله الا الله طب بتون الحمد لله از دفاع بگه التماسش کرد ملک ابو طالب نپذیرفت اومد ابو جهل واسش کرد فلانی واسش کرد میخوای پشت پش بدین اوبا اجدادت بدین میخوای قریشی مردم چی دربارمون بگن مو که فروش نیست پش بدین اوبا اجدادمون هی بهش وسوسه کردن گفتن گفتن گفتن آخر نتونست کلمه توشید بگه و رسول الله صلی الله علیه و نمیتونم براش کاری بکنم فقط از خدا خواستم عذابش کم بکنه یک از شفاعت های رسول الله صلی الله علیه و آله اینجاست شفاعت بعد اینکه عذابش کم بشه نه که خدا عذابش رو برداره کافر دیگه هیچ وقت خدا گناهش رو نمیبخشه ان الله لا یغفر ان یشرک به مشرکه ایمان نبرده اقرار نکرده به توحید و رسالت رسول الله الله علیه و مشرکه هیچ وقت از جهنم دیگه بیرون نخواهد اومد. فقط رسول الله گفت شفاعت کردم عذابش کن بشه. عذابش چیه؟ کث و جهنمه محضش میشه در میاد. این کابلن عذابی که رسول الله صلی الله علیه و آله خدا خواست در حق هموش داشته باشه خداوند. با چند تا اشریختن و گریه کردن، با چند تا قصه و داستان تعریف کردن، اشخاص غمراه اشخاص زنان، بیشترین اطباع دجال زنونه. چرا زنان؟ چون عاطفی هم احساساتی هم فلانی ده سال حامله نشده رفته پیش کنار زیارت فلانی اونجا رفته بر به کنارش چیده خورده بعد از ده سال حامله شده سبحان الله حامله شد بعد از ده سال رفته پای زیارت پای ولی فلانی بعد از 20 سال فلج بوده الان در را میره نبینا بوده بینا شده عاطفه با عاطفه وارد میشن چند تا عشق هم میریزن گریه خوشحالی هم میکنن بد میشه بد میشه اون درخت درخت متبرکه اون زیارت میشه زیارتگاه و معبدگاه محل توسل و زبش و قربانی و نظر و نیاز در گمراهی باز میشه با عاطفه. همیشه بدونیم صلاح اهل باطل سلاح اهل باطل اسلحه شد عاطفت احساساته اگر شیخی میرید سرسوب داره اینجا گریه میریزه عشق میدیده. با حاضرم نیست که عشقش رو خواب کنه هی حرف میزنه و گریه میکنه بدونید که یک امنهی تو کار هست. بدونید که یک مختصه تو کار هست. نمیگم تهمت تونیتش نمیزنه. ولی که این ترفند این روش روش اهل بدعته. که بیان با عشق با گریه با گریه وزاری راه انداختن مردم را عاطفی بکنن احساساتی بکنن. این روش ما اهل سنت نیست نه برای مرگ کسی نه برای وفات کسی نه برای اعتقاد کسی منش شخصی نه رسول خدا صلی الله علیه و نه غیر رسول خدا نه برای مرگشون و نه برای سلوک و رفتارشون اینها روش اهل سنتین روش اهل سنت بله قران میخواندن تهجد میخواندن تو تلاوت قرآن خشوع داشتن اش او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم اش نمیخند بله اینکه دو کلم انسان بگه بعد غرغرم گریه کنه و عشق رویزه این رو بهش علیه سنت نیست این میخواد با عاطفه تو رو اسیر کنه میخواد با آتفه احساسات تو برنگیخته بکنه و راه و در گمراهی رو به سوی تو باز بکنه برطرف کردن شبه اصلی از اصول دینه خدا من را فرستاد برای ازاله شبه برای برطرف کردن پاسخ دادن به شبهات مشرکی خیلی شبهات داشتن طالب عید باید اون شبهاتی که مشرکین داشتن بدونه طالب علم باید بدونه تو پاسخ بده بدونه شبهه مشرکین چی بود شبهه قوم موسی چی بود وقتی گفتن درخت متبرکه میگم شبههشون چی بود تو بحث تبرک اصل شبهه رو باید بدونه و پاسخ به اون شبهه را هم باید بدونه والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب لهم من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضه حجتهم ضاحضه عند ربهم و علیهم غضب حجت انها حجت براهین مشرکین داحذهن یعنی چی شبهشون شبهه ای شبهه, شبهه نیست که پاسخ بهش نداشته باشیم شبهه ایناش خیلی آسون خصوصا وقتی که انسان به پاسخ دی میبره به جواب دی میبره میدونه که این که شبهه داحذه است شبهه میشه نابود میشه شبهشون یه شبه هست. شبهه رقیق است شبهه ضعیفی هست شبهشون اصلی بیان خدا در اینجا اینه شبهشون دا حده از ضعیفه شبه مشرکی شبه علمی نبود حجت واضح نبود بین نبود بلی پاسخ بود پاسخ واضح بود جواب واضح بود جواب, جواب عربیاء بر اون شبهات جواب واضح بین بود و خدا اومده در قرآن پاسخ به اون شبهات بده همیشه رسولان صلی اللہ و وسلم صحابهش را مسلح میکند به علم که پاسخ شبهات رو بده. مسلح کنه. طالب علم وقت مسلح باشه و شبهه علمی صحیح باشه. اگر این اصلحیت نداشته باشه نمیتونه جواب بده. متمتن بود باشه در این. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابش. احادیث رو با دقت بخونیم. یا معاذ انک تاتی قوما اهل کتاب فانک اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا الله و ان الله. اولین چیز خدا رو عبادت بکنه. یک تا نকরি هم اطاعوا اگر اطاعت کنه فعلمو مصلا بعد نماز اگر نمازن قذیرفتن بعد روزه الان جمله چی میفهمیم وقتی که رسول الله میگه با مکس وقتی که فاصله میداده با فا فاینهم اگر اطاعت کنه یعنی اینکه شاید در توحید عبادت در یک تا فرسی اون اهل کتاب بحث بکنن اول دعوتشون بده به یک تا به خداش خدا اگر در این مورد اسوات کردن برو بحث دمال فاینهم اطاع مسلح بودن به عین مسلح بودن به توفیق مو اول قلنا بونه مسلح میتون که صرف و نحف فاعل فاعل اسم جار مجرور هیچ مدرسه دینی نیست که درش صرف و نحق ول نشه هیچ مدرسه دینی نیست غیر ممکنه شما مدارس دینی تعلیم علوم شرعی داشته باشید درش صرف و نحق نشه چند درصد از این مدارسی که توش صرف و کتاب تهارت و کتاب صلاح و نواقض بزرگ و نواقض نماز چند تا از این مدارس درش علم توحید هست حق خدا بر بندگان است؟ تهارت قلب و شرک و بدعت هست چند تا از این مدارس توحید انبیاء توش هست دعوت ابراهیم توش هست دعوت نوح توش هست دعوت رسول الله و اصحابش توش هست چقدر توحید می کنند چند تا از این مدارس بهشون یاد می دهند ب... طلابشون که نظر به غیر خدا شرک رسول الله صلی الله علیه فرموده حدیث چند تا از این مدارس به طلابشون یاد دادن و گفتن ای طلاب قسره به غیر خدا کفره من حال به غیر الله فرکبه واشرک چند تا گفتن چند تا از اون مدارس گفتن چند تا از اون مدارس اومدن اقوال ائمهشون در توحید در شرک انواع شرک به طلابشون یاد دادن و گفتن چند تا از اومدارس اومدن گفتن میگه نیست تو کتاب های فقی میگه نمیخونن ما از احناف بگیریم تا بریم به تک تک مذاهب من فقط مرور میکنم قبل از این که وارد کتاب بشم تک تک مذاهب ببینیم درباره باره چی گفتن درباره باره توحید چی گفتن احمد سرحندی حنفی ماتریدی نخشبندی از بزرگان حنفی که چار ست سال پیش شرك, شرك في واجب الوجود وشرك في العبادة شرك در ربوبيات وشرك در عبادات توحيد دوطة نوحيدة، توحيد علمي و عملي شرك در هر دوطة واقع بيشه در توحيد علمي نسبته بخدا ايمانكي بخدا داريم افعال خدا وشرك در افعال بندگان شرك در افعال خدا اسماء استفاد و ربوبيات، خلق و فرنجش شريكي بخدا قائل بيشه كي بدترين بوعي شركه و شرک در عبادت نقشه بندیه مواسریدیه ولیکن یک اصولی دارم برای خودشون در توحید که نقد میشه توحید دارم با اسم توحید عبادت که این توحید الان تو مدارس نقشه بندی ها همه ها نیست مگر نازععبادت نیست مگر قسم عبادت نیست مگر قربانی عبادت نیست مگر دعا عبادت نیست دعا هستِ عبادی رسولا مفرم bajo خدا در قرآن مید ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون عن عبادتي قال ربكم ادعوني اسم الدعاء هو ايش عبادته يستكبرون عن عبادتي عن دعائي يعني الدعاء هو العباده فكثرا ميقال تواصلوا مورد الدروسه زدن قايب ليس ميقولين انكم خوتكم ميجي كل اعمالكم نابود مكني توحيدكم نابود مكني خوتكم تباتون ميجي شرا بتطلاب يا أحمد الومي أحمد بن محمد اقحصاري رومي از علمای دولت عثمانی که 400 سال پیش فوتر ده کتاب هدایت العارفین جلد 1 صفحه 57 میگه انو از انواع شرک یکی از انواع شرک الله للتقرب إلى الله عبادات غیر خدا صدا زدن غیر خدا برای تقرب به خدا به خدا نزدیک شو قربانی بکنی ذلف بکنی خدا جهانوی اهم اینو میگه شرک در ساعت است در عبادت در علم در قدرت ولی همه این انواع شرک رو میاره مثلا ولی الله دهلوی احمد ولی الله ابن عبدالرحیم العمری دهلوی از بزرگان احناف 30 پیش شده در دهلی در کتاب نوثه الخواطر میگه از انواع شرک شرک فسجود شرک فاستعانه شرک الشرف التسميه الشرف الطاعب التحليل والتحريم الشرف الذبح تسيب السوائل والبحائر الشرف الحلف الشرف الحاج لغير الله قسام بغير الخدا ذبح نذر همينون عزاوات ميگي ميگت علماء احناف نيس قلد محمد وهاب ابو بيده چرا وقته ميگن نذر بغير خدا شرف چي شما ميگيد وهابيات گفتن محمد وهاب گفته اين كجاي بوده اين كجا شاگت محمد بوده كجا دعوتش وهابي بوده اينكه حنفيه كذا علماء احناف 300 سنه پیش بوده زیادند از علمای احناف میگه تو کتابهای فقه میگه تبدأ بدع صنائع جلد 120 تحفه الفقها فتح الملهام معرفه السنن رد المقت رد المختار, المختار مالابن ابن عابدين فتاويه بحر الرائق مبسود حاجت مراق الفلاح ابداع إنها علمای احناف ده کتاب مال الان آورده بدون استثناء بدون استثناء این کتاب ها را باز بکنید میبینید که نوشتن گشت کاری کردن قبر گذاشتن سنکیدن دور قبر نوشتن روی قبر نز کردن کنار قبر زبح کردن قنار قبر توسل به قبر حرامه کفر شرک خلاف امر رسول الله همه اینها تک تک اینها ما داریم حتی تا جایی که ای احناف گفتن شم روشن کردن کنار ناره قبل اینها نرائیشر که با صدزنگ حرامه درختی بهکاری روی قبل حالا بریم مقابل اونهایی که ادعای ادعا رو دارن برین نگاه بکنید. درختها کاشتن تو قبلستان روی قبلشون یا نه شفره گرفته و اع جایی کمتر رو به جای بیشتر. همه اینها گفتم توی کتابا کتاب هست اینجا بحث فقط بحث احناف نیست. یعنی ما در گفتم در تمامی کتابا مالکیام همینطور همیو داریم در دار کتاباشون مثلا ابن العربی مالکی میگه شرک دو نوعه شرک در اعتقاد و نسبت به خدا شرک علمی عمل شرک عبادات قال الشرك على اقسام ويعود ذلك الى قسمين قسم في الاعتقاد وقسم في العمل فان كان الشرك في الاعتقاد فلا خلاص ولا قصاص و این کان شرط فی العمل رجا الخلاص أنواع دار دار ان واشیت و می بیان میکنن و بعد جالب در خصوص در کتاب های که اهتمام خاصی دارم به مقاصد شریعت و همچنین این باب را قشنگ و با دقت نوشتن مثلا دو کتاباشو میگم حقیقت الذرائع التمسل بما هو مصلحه الی مفسده بحث المسالح و مفاسد یک مصلحت مفاسد شخص انجام بده به خاطر اینکه حاجتش برآورده بشه توسل به مرده بکنه التو... كتب عن امر غير ممنوع لنفسي يخاف من ارتكاب الوقوع في ممنوع للكتبه مالکیه مدونه جلد 1 تفسیر شروانو کتاب الکافی ابن عبد البر تنویر المقاله ثمرالدانی تفسیر قطبی جلد 13 همه اینا تنویر المقاله شيل. ثمر دي كتاب ابن عبد البر جلد می‌گویند همه اینها به اتفاق گچکاری کردن قبر، تموین بستن، نوشتن روی قبر، بنا ساختن، ساختن مسجد، استقبال قبر دعا، سجود، نماز، ذبح، قربانی، هر نوع عبادتی کنار قبر حرامه تجمع کنار قبر حرام امام مالک میگه من كراهات يشمعه ونكثب جلو قبر رسول الله سبحانه بإيساء فقط سلام بكنا بره تكرار مكنا كراهات تحريبيه قلت ان امام مالك رحمه الله فقال انها امام جو كتاب ودري قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر في عمره صلى الله عليه وسلم سيده, سيده البشرة قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي این اسماعیل ابن اصحاق در مفسود یاد میکنه با سندت تحیح از امام مالک اینا ها تو کتاب ها هست از خود امام مالک از خود اطباع امام مالک استغاثه گفتن به قبل دعای میز بعد الان اگر بحث شد میگن نه ما تو اعتقاد ماتردیم ما تو اعتقاد اشعریم ما تو اعتقاد صوفی ما تو مثل فقیم و مالکی هستیم و باجون اینجا تو کتاب های فقیتون هست این هم بحث فقهه اینا ها فقه اعتقاده اولین فقه چرا تو کتابی فقیتون ایمه او اردن بگه اینا ایمه مذهب نبودن اینها چیه اصول کلی اینها ها محکماته متشابه چیه آباب عجداد شیخ فلانی و شیخ فلانی اصول محکم رادم رها را میکنه اصولی که تو مذاهب اومده تو کتاب ها اومده نه مال محمد وهابه نه مال ابن تیمیه هست ما نه تا اطباع ابن تیمیه هستیم قرآن والسنتي طابع قرآن والسنتي راه راه رسلا الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم ما طابع رسلا الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ومن حفت قد رؤيت اشره رسول الله صلى الله عليه وسلم نذب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وتفسر بما يك هي أئده قارب محمد و sortir قارب بن تيمية و غير를 و قبلغ STRENGA أحمله ما ذهبت كتابه 50 قال 510 قبل هذه الذيهي بود امام مالك ام رهابي بود امام مالك تابع ابن تيميه بود تماميه مذاهب بو. ان شيء شيء تشوفه يحرم على المسلمين أن يتخذ قبور الانبياء والعلماء والصالحين مثل حرمه كثير يقبنو بكنه ولا بيخاد مسجد بسازه خوني بسازه وقال وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كانه غير صنما وكانت العرب تصلي للأسنام وتعبدها فخشي رسول الله, صلى الله عليه وسلم على أمتي أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كان كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنع قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تشل القبر وتنا يصلى إليه ويسد نحوه ويعبد يقول رسول الله عليه وسلم ترسي قبرش بط بشي فراثت دي بشي الآن أقرب أحفظ ندرز دانو ندرز دانو موردشوت يقول ممكن بطني فراثت خدا پیانبر صلی الله علیه و آله برات برای اینکه مشرکین بت فرستو دعوت بده ما که بت رو نمیپرستیم ما که مرده صدا میزنیم فرق بین این دوتا نه ما عبدون فرقی نیست چی میخوای بت رو صدا بزنی چی میخوای پیامبر خدا رو صدا بزنی فرقی نیست اگر فرقی بود رسول الله صلی الله دعا نمی کرد نمیگفت اللهم لا تجقر وسنا یعبد من دون الله قبرمره بت فرات کارو نه دیگه فرات دعا نمی کرد بعد میشه بت خبرم میشه بوت وقتی که پرستیده بشه وقتی که دعا زده بشه صدا زده بشه اینا همه تو مذاهبه علماء شافعیه هم همیتون من به ترتیب رفتم افتماده حناف بعدم مالکی ها بعد شوافر بعد حنابله امام شافعی چنانچه در کتاب اوم و مجموع و رضاط طالبین محذب محذب جلد یک چه سر پنج و شیش رضاط طالبین جلد یک چه سر پنج قفت 37 و 38 عقل سمین صفحه 186 اینا همه کتاب شافعی است. در این کتاب اومده وسائل شرک مثل گچکاری کردن قبل سیوانکاری نوشتن بنا کردن شم گذاشتن بنا کردن مسجد نماز بسی اونها استقبال برای دعا تواف نشستن ووسیدن قبل مسع قبل مسع ذریح خیم زدن قرون خوندن بسر قبل حرامه حرام امام شافعی رحمه الله حتی قرآن خوندن برای میت نه که تو قبرسون خارج از قبرسون میگه حرامه چرا امام شافعی در تا اون میگه میگه چون خدا در قرآن گفته ولیس علی انسان الا ما شاء چون انسان فقط اعمال خودش ثواب اعمال خودش بهش میرسه اون کسی که میخونی هم ثواب عمل خدا به خودش میده نه به بعد طرف میاد میگه نه امام نبوی گفته میرسه شما میگه من شافعی هستم ما شافعی هستی توجهی که الارت می طرفی ما رسم تا الان بعضی روسها خیمه میزنه سواب روز روی قبر قران میخونن این که حتی هم قبول ندارم نه فقط میگه ثواب به قران میره نه گفته بر سر قبر امام نوری در کتاب مجهول میگه زدن خیمه چادر چتر سایه روی سر قبر حرامه یک سایه بزنید بر سر قبر امام نوری را کتاب مجهول میگه حرامه بشینی کنار قبر قران بخونی حرامه تو مذهب شافعی ترى <تصفيق> mira ala qabr suluz aid ke shod tak tak tak mizana usra qab al fatiha bashu limkuna al fatiha khundan ke bi ittifaq a'me isha fi haramiga nisuk kitabha chra mi gan mashafein حرف علماته نببأ ذلك قال النبي يكره تجسيس القبر والبنى والكتاب عليه ولو بنا في مقبرة مصبلة هدن فقرار بشي رسال القابري بنا بشي نبشت بشي بغاد حد بشي بغاد اون ذيورها و اون سانتشينها بغاد خراب بشي كيف يقول ما مهما مهما همام النبي رحمه الله مهما نمي قمتون نبع علمي كاربه قداد شون بحث سد زرائع مهما ذریع میشه مردم که اینا نا قبولید اومدن زید الدین ازدموردان نگیدن با مرده مخالفه ولی این تو مذهبه مباذ بدون تو مذهبه ائمه اینطوری اومده چرا امام نووی رحمه الله میگه هر نم بنایی بر روی قبا باید نابود بشه ابن حجر هیتمی که مخالفین سرسخت ابن تیمیه است ابن حجر هیتمی بییات الکبیره الثالثه و الرابعه و الخامسه و سادسه اتخاذ قبور مساجد و اقاد صرج علیها و اتخاذها اوثانا و طواف بها و استلامها و الصلاه الیها میگه کبیره 93 4 5 6 7 8 تا ذکر میکنه میگه 93 میش مسجد رو قبر ساخته بشه شام گذشته بشه دعا و صدا زده بشه مرده طواف بشه تبرک بشه تبرک بشه نماز به سوی اون خونده بشه همه اینها بگه جزه کبائره در مذہب امام شافعی مخالف ابن تیمی هستا این تو اطباع ابن تیمی نیست مخالفین این سخت سخت ابن تیمی هست ولی میگن دعا و سیازدن مرده شرک اکبر مخرج از من از کبائره بزرگترین کبیره هایی که خداوند نمی بخشه اینو... کتاب هست بریم بخونیم كتاب رو باز جلد و صفعشو اما شن اینجا بيتم بيگم بريد خواتون بريد كتاب الزباجر باز بکنین مال ابن حجر هيتامی جلد و صفعشو انا چیه؟ کی گفته؟ امام شافعی رحمه الله كلامهای زیادی داره در توحید امام شافعی رحمه الله و بعض اتبع النهي جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أتباعي النهي عن أنواع من الشرك الأثبر والأظهر أسخد شافعي بأتباعي كالدعاء والاتغاثة لغير الله والسجود لغير الله والركوع لغير الله والنذر لغير الله والذب لغير الله وإعتقد أن أحد يعلم الغيب درما تنمام شافعي رحمه الله بأتباعي زبح وركوع كادا وتوفك أدن وتبرك إنها جزء شركة جزء شركيات در روضه طالبین جلد 8 صفحه 284 اومده و زواج در یک صفحه 167 و حمد سمین صفحه 222 و در تطهیر الجنان صفحه 304 و از علم غيب میگه به مرده بگیم که این فلانی علم غیب بدونه و حلف الله شرکیات خیلی اکبر و ما شاء الله و شاد قال الشافعی رحمه الله ومن حلف بشیء غیر الله جل وعلا الرجل والكعبه و با عبی و کل و کله از شکیات قسب به غیر خدا هست ب بجان بهجان پدره؟ بیایان شافه ای ها چرا نمیگن به مردم؟ چرا بازگو نمیشه؟ چرا این چیزهایی که در کتابها اومده ت میان میگن نوا بزرگزود؟ چرا میگن نم نماد؟ چرا میگن نواقعذ طعی؟ اون چیزی که اصلی ایمال تو میکنه؟ اون چیزی که حالت مخلت در جات میکنه؟ وچی دیگه اعباء ابو جهلت میکنه فرعونت میکنه مردم نمیگن نماز اگر باطل شود طهارت اگر باطل شود شو ان الله لا یغفر ایسركه و یغفر ما ذلك لمن یشاء ذلك شاید خدا او را بخشه زناکارا شاید خدا ببخشه قاتل‌ها شاید خدا ببخشه ولی اون کسی که دو تا شرکاتی برداشته هیچ خدا او رو نجاتشون بدیم از جهنم خدا از خالد مخلط شدن در جهنم انبیاء فرستاده شدن راحبون انبیاء رسولات از رحمت للعالمین بود رحمت بود چون اومد مردم را از عبادت تاغوت از شرک از بدعت و قرفات از گبراهی نجات بده خاطر همین رسولات از همیشه میگفت خیر الهده و محمد بهترین رو بشت و خیر الهدیه دیو محمد صلى الله عليه به خير نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ديجت برئ نجات البشريه رحمه ورحمه للعالمين مود كه اماده بر نجات به ته عذاب نبينا خالد مخلد در نبي رحمت اكو شره ما راهم یسین ماردو چرا شفقت نداری به چرا نمیخو مردم رو نجات بدید نجات از خلود در جهنم کسی عذاب ببینیش عادی درس نجات دیابه کسی مدکه به گناه بشه الی که کی از دوچوره شیر کی اکبر چرا یاسره نجاتش вала май حنابله بازم در کتاباشون این بحث وบทر مفصل پرداختن بهش مثل ابو بکر ابن محمد الحملی میگه انا بعشت و یاد میکنه میگه شرک دعا و شرک محبت هر شرکی میاد میگه آیه دارکی داش میاره شرک دعا میاد الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك من الظالمين هر نه دعا و شرك أكبر مخرجات من الله شرك النية و إرادة قسمانكا يريد الحياة الدنيا وزينة نوفق إليه معماله مثل شرك منافقين هذه هي إنو أنواع الشركة كتابات كتابة حنابلة لذلك عبو بكر حنبالي ميقول در كتابش بطور مفصل برامون انقضيه صحبت ميكون كي نكي انتنها انا عالم از علماية حنابلة بلك در كتابة حنابلة مفصل تر این هندوسه کتاب‌های ابن تیمیه و ابن قیم و دیگران که به طور مفصل به این قضیه پرداخته‌اند از امام احمد رحمهم الله زیاد نقل در بحث توحید امام احمد رحمه الله چنانچه در کتاب کشف القناع کشاف القناع جلد 2 صفحه 339 کتاب 1 270 مبدع جلد 2 273 جلد 1 285 معتمد جلد 1 سلسله مغنی جلده سته فقره همه این کتاب ها در بحث قبور که میارند بیدان القبور و البناء علیها و تعلیتها و كتابه علیها و قداما سجد و استقبال الدعاء و السجود علیها و الصلاه و کذا همه اینها حرام وجود شرکیات بنا کرده روی قبر ساخته بشه زیارتی ساخته بشه تبرک به اون سجده طواف تحویل بوسیدن و تقبیلها و تبخیرها استراحه شام والجلوس عليها به شخصان الفصات والخييمه صيه زدن خيب زدن و كثبه القبر پارچه به والاستشفاء بتربه من الامراض والاستشفاء بخاك القبر و تمسح به در و شد الرحل اليه و رفتن همه اينها ذرائع شرك اكبره وسائل شرك اكبر حرامي نيچيه در پيوانه طبیحا مذهب روی این اتفاق سوال میگن نمیگن وقتی که میگن ائمه چهار مذهب اینها این, این چهار امام چراغان روشن مگاهب اهل سنت مرجع و مصدر فقه اهل سنت الان اون مقلدینی که ادعای تقلید رو داره ای کاش مقلد بودن وقتی که بخوان بیان پا پوشی برای درست کنن میگن این وهابی شده این سلفی شده میرن به شکلت کردن و نام نویشتن و, و میرن بر علیه هت. نام نگاری میکنن و امزا میگیرن و تا جایی که بتونن با هات عداوت و دوشبنی میکنن ستیز میکنن میگه نیست میگه ندیدیم با دروغ و محتان این میگه قرآن اینو قرآن میزوده ده. اون میگه نمیدونم چهار تا تعویز اگر آتش دادی هزار تا شبه پشت سر اسباب تحقیر اسباب مذخره و تمسخور و ریشخنده میرن این برای اونور بر میرن ها, ها این سلفی ها آمدن قرآن بسوزنن این قرآن آتش میدن. یعنی اینا یعنی دین ستیزن در صورتی خودشون دارن ستیز میکنن با دین خدا ما تو قانون اساسی بعضی ها میگن شما چطور جرعت میکنید اینجا بیاید؟ در ایران بیاید شما. ما احتیا بکنید بحث قبرا بکنید خلاف نظام خلاف نظام نیست توی قانون اساسی مون اومده که حال مذاهب حق دارن دعوت به خودشون بودن آزادن تو مذهبشون چه مدرسه چه خارج از مدرسه قانون جمهوری اسلامیه ما هم خلاف قانون صحبت نمی کنیم خلاف نظام صحبت نمی کنیم بر علی حاکمی وزیری سخن نمیگی ما بر علی هیچ ما بر علیه قرآن و سنت اگر کسی قیام بکنه بر علیه اعتقادمون صحبت بکنه اونجا هست که کسی نسفر میکنی میگی خدا اگر کلمه کفر و اجازه داد اون اگر شخص از مرگش مید الا من اکره و قلبه و مطمئن اکراه شدی ولی در ازای اون باید قلبت مطمئن باشه کجا قلبش و مطمئنه کجا توحید اون چیزی که عمه مذاهب میگن دارن ندارن مح و می جنگن اگر اومدی این اخبار را زنده کردی اگر اومدی کفتید اینها این بودن بدون استثناء هیچ کتاب فقید هیچ کتاب فقید شما ورق نمی زنید الا اهمه مظاهب چارگانه اتفاق دارن روی اینکه که زبح به غیر خدا شرکی قسم به غیر خدا شرکی بنا کردن روی قبل ذرایع شرکی نوشتن روی قبل همه کتاب های فقید چرا جداال میکنیم چرا به باانه آسان گیری بزار آسانوم بگیریم چیزی نمیشه؟ چه چی چیزی نمیشه؟ میگه اوم دور خرب چ از کجا به اون راهه میگه همین نبود که اول گفتن بزاری یادشون میکنیم اسمشون رو نوشتن روی قبل. میگه نبود به مرور از من گفتیم گفتن, گفتن بیاد چهره رو هم فراموش نکنیم چهرهش رو روی سنگ مقاشی میکنیم؟ مگن نشو که بعدا اوم نسخه برداری کرده. از چکلش شمائلشون گذاشتن توی تاخته‌های خونه‌شون، این قرم نوح بودن. گفتن یاد یادو یادواره ای اینها را زنده بکنید. چی شدن؟ طوفان نوح چیکار کرد؟ برای کی فرستاده شد؟ اون عذاب، اون طوفان برای چی فرستاده شد؟ برای این عناادتشون، برای این گمراهیشون، این کفرشون از کجا شروع شد؟ از همین، قلوب در قبل قلوب در مورد. متشابه را گرفتن متشابه را گرفتند، محکمات را, را هک دعای به خدا را رها کردن چه دستم دعای منیه اخرین در اونها نبود توی که اعتقاد تو به انبیاء اعتقاد تو به داری اخرین نبود اونها بگه خدا دعای نوح رو نپذیرفت قال ابنی من ان ابنی من اهلی فرضانند اهل من نجات شده خدا دعای تو تجاوب نکرد شما که میگین انبیاء و اولیا مستجاب دعوه‌ هستند خدا پس چرا دعای نوح را تجاوب نکرد فرضانیتو نجات نداد چرا گفت از اهل الیه انه لیست من اهلش چرا دعای نیست دعای هر کسی را خدا بپذیره حتی بیاش. میگه رسول الله صلی الله علیه و بر سر منبر ایستاد میرفت بالا دعا میکرد میگفت آمین نه فرمودم بعد از اون صحابه پرسید چرا گفتی آمین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فهموندن کی چی گفتی چی خاصی از خدا میگرد خدا چه چیز خواستن دو چیز را به ام داد یک چیز یکی رو به نداد استجابت نکرد دعا رو می خدا نگفت که دعا رو سجاب نکرد این رسول خداست. و میاز شخص اونها اولیا بودن، صالح بودن، اونها به خدا نزدیک بودن، میچسبه به این شبهه و توحید خدایی، تو پرستی رو رها میکنه، دعای خدا رو رها میکنه. میگه اسم او از خدا نمیبره. خدا میگه نمیگه من ارحم الراحمینا. همیشه تو قرآن آغاز میکنیم بسم, میکنی. بسم الله الرحمن الرحیم، تو کتابی شروع میکنیم اینجا امام تمدوها میگه بسم الله الرحمن الرحیم و به ثقتی کتاب کشف شبهات اعلم رحمته الله بسم الله الرحمن الرحیم خداوند ار رحمان و رحیمه ار پروردگوی خداوند ار رحمان و رحیم باشه ارحم الرحیمین باشه, الرحیم باشه خداوند چه نیازی که انسان بره در مرده را بزنه مثل این که اون مرده شفقتش از خدا بیشتره میگه اون مرده از آیندت میدونه میگه اون مرده از حالت میدونه از قلب کاوه میگه میدونه که به دردش میخوره نمیخوره میگه اون مرد بیشتر بهت رحمی کنه از خدا بنده علام و غیوب که از قلبت آگاهه. چرا ارحم و راحبین هست که رحمتش قابل قیاسی صلی اللہ علیه وسلم مادری میمینه بچه به دستشه میگه این که حاضر بچه تو آتش بندازه میگه خیر میگن خیر مهرش شفقتش رحمت اون مادر مانعه اینه که بچه تو آتش بندازه و لله المتلال اعلا خدا بک قابل قیاس با مادر با ر خود چطور خدا رحب الراحبینه چطور خدا علم و چطور خدا سمیع و بسیره بیش اما یجیب المختار را دعا ویلی تالک عبادی عنی ویلی قلیب و جیب دعوت الدع خدا سم دعاش بکنیم صداش بزنیم میشنمم میگه میبینم میگه از باطن چرا انسان میره در غیر خدا را میزنه میگه رحمه اون مرده بهت بیشتره میگه اون مرده از, آینده از با خبره؟ محکم غها میشه میشه به شبه میریم به اشتباهات چه چی چیچی سبب میشه به اشتباه بریم اینکه اصول محکم دینیمون رو نفهمیدیم اساس دینیمون نفهمیدیم اساس دین توحیده اساس دعبت انبیاء توحیده اساس رو فهمیدی یاد دادی به طلابت یاد دادی به مردم بعد دیگه میرن به فقه به کتاب تهارت و کتاب نماز لا بد غافل بشيء من اهل أتنى علي سبحان الله والحمد لله صلى الله محمد وعلى ال محمد